به نام خدا کتاب افسانه های پریان مترجم رؤیا سلیمی مرند ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه داستان دوم شنل قرمزی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود در روزگاران قدیم کنار یه جنگل بیشه ای بود کنار اون بیشه دهکده ای قرار داشت دخترهای این دهکده همه زیبا بودند اما زیباتر از همه دختری بود به اسم بیدی مادر بیدی دختر زیباش را خیلی دوست داشت بیدی همه زندگی مادرش بود مادر آشق حلقه موهاش بود آشق برق چشماش و آشق چونش که زیر اون شکلی شبیه قلب داشت برای بیدی هم همینطور بود فکر میکرد مادرش بهترین مادر دنیاست مادرش هیچ وقت بهش دستور نمیداد و او را سرزنش نمیکرد یا بهش ناسزا نمیگفت میذاشت هر کار میخواد بکنه حتی وقتی به بازار کولیا میرفت و تا عصر اونجا میموند چیزی به او نمیگفت دخترهای دیگه آه میکشیدند و میگفتند بیدی خوش به حالت تو خیلی خوشبختی اونا هم مادرای خودشون رو دوست داشتن ولی میخواستن جای بیدی باشن و هر کاری دوست دارن بکنند اما فقط مادر بیدی نبود که او را دوست داشت مادر بزرگش هم از دیدن او خیلی خوشحال میشد. حتی بیدی رو عزیز شیرینم یا شاهزاده کچک مادر بزرگ صدا می کرد و همیشه کیکای خوشمزه که مورد علاقه بیدی بود درست میکرد. وقتی تولد بیدی نزدیک میشد، شد مادر بزرگش چند روز دنبال حدیه مخصوص میگشت تا براش جالب باشه همیشه بهش لباس میداد، لباسی که زیباترش کنه اما این بار چی باید میداد؟ یه گل سر برای موهاش؟ یه گردن بند؟ یه پیراهن؟ اما گنجه لباس بیدی پر از لباس بود و جبه ای هم پر از هدیه های کوچک و بزرگ داشت مادر بزرگ فریاد زد فهمیدم برای تولد عروسک شیرینم یه شنل می دوزم از خوشحالی یادش رفتم پایش رو عوض کنه و همینطور دوید وسط جنگل و از بیشه گذشت تا به دهکده برسه و به مادر بیدی بگه که چی رو انتخاب کرده مادر بیدی هم خیلی خوشحال شد و گفت دختر کوچولوی ما درست در سنیه که شنل لازم داره مادر بزرگ گفت البته این یه شنل معمولی نیست شنلی از بهترین نوع مخمل با خطهای ابریشمی و کلاهی که با خز تزئین شده باشه مادر پرسید چه رنگیه؟ مادر بزرگ گفت هر رنگی که براش مناسب باشه مادر بیدی گفت مثلا آبی؟ مادر بزرگ پاسخ داد آبی برای دریا و آسمون خوبه نه برای بیدی ما؟ مادر پرسید خب پس سبز مادر گفت سبز برای چمن خوبه نه برای بیدی ما مادر پرسید خوب زرد چطوره مادر گفت زرد شاید برای خورشید یا حتی ماه خوب باشه اما برای بیدی ما مناسب نیست بعد یهو یه هر دو یک صدا گفتند قرمز قرمز رنگیه که برای بیدی ما مناسبه مادر بیدی با خوشحالی گفت این رنگ به گونه های گلی رنگش می‌خوره. مادربزرگ با عجله به خونه اومد و دست به کار شد روزا و شبا کار کرد اونقدر کوک زد که چشماش کمسو و انگشتاش زخمی شدند اما شنل به موقع برای تولد بیدی آماده شد مادر و مادر بزرگ دیگه نمیتونستند صبر کنن فوری شنل رو تن بیدی کردن و روبان بلند کلاهش رو زیر چونش گره زدند. بیدی چرخی زد، شنل هم تکانی خورد. بیدی گفت: مادر بزرگ، زیباتر این زیباترین شنل دنیاست. خیلی دوستش دارم. بیدی از خونه خارج شد تا اونو به دوستاش نشون بده. مادر و مادر بزرگ متوجه شدند که همه برمیگردند و ازش تعریف میکنند. مادرش گفت این مثل یه نقاشی زیباست مادر بزرگ گفت به زیبایی یه شاهزاده شده از اون به بعد بیدی هر جا می رفت این شنل رو می پوشید به همین خاطر دیگه او رو بیدی صدا نمی بلکه همه به او می گفتند شنل قرمزی یه روز صبح که شنل قرمزی به آشپزخونه رفت دید مادرش ناراحت و دست پا چست. مادر گفت که مادر بزرگ بیماره و در بحث سر افتاده و اون نمیتونه به عیادتش بره مادر گفت امروز صبح خیلی سرم شلوغه، اما کمی کلوچه با کره تازه درست کردم کچولوی من اونو برای مادر بزرگ میبری؟ شنل قرمزی گفت بله البته مامان جان میدونی که چقدر مادر بزرگ رو دوست دارم مادر کلوچه و کره رو توی سبت گذاشت شنل قرمزی فوراً به راه افتاد. هنوز خیلی دور نشده بود که دید چندتا از دوستاش بازی میکنند. اونا پرسیدن شنل قرمزی کجا میری؟ شنل قرمزی گفت دارم میرم به بیشه، بعدم به جنگل، تا مادر بزرگم ببینم. میدونید اون مریضه، دارم براش کلوچه و کره میبرم. دخترای دیگه خیلی دلشون میخواست همراهش برن، اما جرأت نداشتند. یکی از اونا گفت مادرم میگه نباید به جنگل برم یکی دیگه گفت مادرم میگه نباید به بیشه برم سومی گفت مادرم میگه اگه یه قدم از مزرعه دور بشم زنده زنده پوستمو میکنه شنل قرمزی ترسید و گفت چه وحشتناک مادر من اینطور فکر نمیکنه چون خودش منو به جنگل فرستاد این رو گفت و به راهش ادامه داد. اون روز یه روز آفتابی بود. آسمان صاف بود و فقط چند تکه ابر سفید در آسمان دیده میشد که با نسیم این طرف و اون طرف می‌رفت. شل قرمزیم شاد و سرحال در جاده جنگلی راه میرفت. در جنگل درختها خیلی بلند بودند. شنل قرمزی ایستاد و با تحسین به تنه بزرگ درختها و شاخه‌های های درهم و برهم اونا چشم دوخت در همین وقت سر و کله گرگی از دور پیدا شد شنل قرمزی ساکت و بی حرکت بود طوری که ممکن بود او رو با درخت اشتباه بگیره اما شنل قرمزه او توجه گرگ رو جلب کرد آروم جلو اومد تا ببینه توی شنل چیه وقتی شنل قرمزی رو دید آب از لب و لوچش سرازیر شد با خودش گفت جوونه و آبدار و خوشمزه بهبه شام مفصلی گرگ خود را برای پرش آماده کرده بود اما در همین موقع از میان جنگل صدای تبر هیزم شکنا به گوش رسید صدای تبر یعنی وجود انسان و وجود انسان یعنی وجود خطر با خودش فکر کرد اگه بخواد دختر رو همونجا بخوره ممکنه او فریاد بزنه و هیزم شکنها همه به اونجا بیان. شاید اگه یه گرگ جوان بود خودش رو به خطر مینداخت اما او گرگ پیر و باهوشی بود. با خودش فکر کرد بهتره برای شام دختر کوچولو رو بخوره. اما باید نقشهی می کشید و منتظر فرصت می‌نشست. گرگ در حالی که لبخند بلب داشت کلاهش را به نشانه احترام از سرش برداشت و گفت روز بخیر خانم محترم وقتی شنل قرمزی دید گرگ جلوش استاده میتونست برگرده و فرار کنه میتونست فریاد بکشه و از هیزم شکنها کمک بخواد یا میتونست هر دو کار بکنه اما او هیچ کار نکرد چون هرگز نشنیده بود که گرگ ها خطر نکن. شایدام خوب بود که نمیدونست. نه مادر نه مادربزرگش بهش نگفته بودن. شایدام فراموش کرده بود. شایدام نمیدونستند برای اینکه قرار نیست مادر و مادربزرگ همه چیزای دنیا رو بدونن. تفلک شنل قرمزی کوچولو حتی یه لحظه هم به فکرش نرسید که این گرگ قد بلند زیبا با رفتاری متین و لباسهای قشنگ بخواد او رو بخوره. بنابراین کمی خم شد لبخندی زد و گفت روز بخیر آقای گرگ. گرگ گفت چه شنل زیبایی چه کلاهی با خست از این شده. شنل قرمزی گفت درسته آقای گرگ من همه جا این شنل رو میپوشم و همه منو شنل قرمزی صدا میکنن گرگ بار دیگه تعظیم بلند بالایی کرد و گفت شنل قرمزی هر کاری بخوای برات انجام میدم ممکنه بگی در جنگل تنهایی کجا داری میری شنل قرمزی گفت دارم میرم بادر بزرگ عزیزم رو ببینم او بیماره و همینطور که میبینید دارم براش کلوچه و کره میبرم مادرم براش فرستاده. گرگ پرسید: مادربزرگ بزرگ عزیزه تو کجا زندگی میکنه؟ شنل قرمزی جواب داد: جایی که جنگل به ده میرسه یه خونه کوچک و زیبا هست که خونه مادربزرگ منه. هیچکس اونو گم نمیکنه. با شنیدن این حرف چشم های گرگ برقی زدند اگه نقشه خوبی میکشید اون وقت میتونست هم شنل قرمزی رو بخوره هم مادربزرگشو شو گرگ گفت دوست دارم مادربزرگ خوبه تو رو ببینم شنل قرمزی گفت واقعا که خیلی خوبه حتما ازش خوشت میاد گرگ گفت البته که همینطوره حالا من از این راه میرم تو هم از اون راه برو اینطوری بازی میکنیم ببینیم چه کسی زودتر به خونه مادربزرگ میرسه شنل قرمزی فریاد زد اوه بله خیلی جالبه گرگ گفت یک دو سه بزن بریم گرگ راه کتاحتر را انتخاب کرده بود و با سرعت زیادی از میان جنگل می گذشت. راهی که گرگ برای شنل قرمزی انتخاب کرده بود خیلی طولانی و پرپیچ و خم بود اما در عوض بسیار زیبا بود همه جا پر بود از درخت های پر میوه و گل های زیبا و پرنده های رنگارنگ و پروانه های خیلی زیبا. شنل قرمزی با دیدن درختهای های پرمیوه دلش میخواست مقداری میوه جمع کنه. وقتی هم چشمش به گل های زیبا افتاد فکر کرد دست گلی برای مادر بزرگش بچینه. کمی هم به دنبال پروانه ها دوید و بازی گوشی کرد. ساعتی گذشت. شنل قرمزی آنچنان سرگرم جمع کردن میوه و چیدن گلها و دنبال کردن پروانه ها شده بود که به کلی مادر بزرگ و مسابقه با گرگ رو فراموش کرده بود درست در همون لحظه که یادش اومد گرگ هم در خونه مادر بزرگ رو زده بود برای اینکه پیرزن نفهمی خطری تهدیدش میکنه گرگ باهوش به آرومی در زد درست شبیه به در زدن یه دختر کوچولو. تق تق مادر بزرگ گفت چه کسی در میزنه؟ گرد صداش رو عوض کرد و خیلی آروم گفت مادر بزرگ شنل قرمزی هستم برات کولوچه و کره تازه آوردم مادر بزرگ گفت خوش اومدی عزیزم اما من توی رخت خوابم خودت بیا تو دستگیره رو بکش و چفت در و باز کن گرگ دستگیره رو کشید و چفت در رو باز کرد در باز شد و او داخل خونه رفت بعد هم بی سر و صدا مادر بزرگ رو داد حتی لباس خواب و کلاه خواب و شالش را هم بلعید گورگ گرگ سیبیلاش را پاک کرد و گفت برای شروع خوب بود حالا باید منتظر بقیه شامن باشم ساعتی نگذشته بود که شنل قرمزی بیخبر از همه جا در زد تق تق گرد پرسید چه کسی در میزنه؟ زنه؟ گرد اونقدر حیجان زده شده بود که صداش خیلی خشن شده بود شنل قرمزی کمی مکس کرد و با تعجب گفت این صدای مادر بزرگم نبود اما چه کسی دیگه ای می تونه باشه؟ بعد با خودش فکر کرد و گفت حتما مادر بزرگ سرما خورده که صداش خشن شده. شنل قرمزی فریاد زد. مادر بزرگ من هستم شنل قرمزی عزیز شما. این بار گرگ صداش رو ملایم کرد و در حالی که سعی میکرد صداش شبیه مادر بزرگ باشه گفت. عزیزم من توی رخت خوابم خود دستگیره رو بکش و چفت در رو باز کن. شنل قرمزی دستگیره رو کشید و چفت درو در باز کرد و داخل شد گرگ هم خیلی سریع رفت زیر پتو و از فرق سر تا نوک انگشت پاش رو پوشوند شنل قرمزی فقط چراغی رو دید که توی اتاق روشن بود شنل قرمزی گفت در بزرگ سلام مامان برات کلوچه و کریه تازه فرستاده گرگ مکار زیر پتو پوس خند زد برای شام فکر دیگه ای داشت گرگ گفت لقمه کوچولوی من کلوچه ها رو توی جانونی بزار. شنل قرمزی گفت چشم مادربزرگ بزرگ گرگ گفت عزیز خوشمزم کره رو بذار تو آشباز خونه شنل قرمزی گفت چشم مادربزرگ بزرگ گرگ گفت حالا خوشگل من بیا کنارم و خودتو گرم کن شنل قرمزی از تخت بالا رفت هیچگاه مادر بزرگش رو بدون لباس ندیده بود بنابراین از چیزی که دید خیلی تعجب کرد شنل قرمزی پرسید مادر بزرگ چه دستای بزرگی داری؟ گرگ خیلی سریع فکر کرد و جواب داد برای اینکه بهتر بتونم تو رو بغل کنم شنل قرمزی گفت مادر بزرگ چه پاهای بزرگی دارید؟ گرگ جواب داد ی کوچکم برای اینکه سریعتر بدوم. شنل قرمزی گفت: چه گوشهای بزرگی داری؟ گرگ جواب داد: برای اینکه صدای تو رو بهتر بشنوم کوچولوی من. شنل قرمزی گفت: چه چشمای بزرگی دارید؟ گرگ پاسخ داد: برای اینکه تو رو بهتر ببینم عزیزم. شنل قرمزی گفت: چه دندون‌های بزرگی داری؟ گرگ آب دهانش رو قورت داد و گفت برای اینکه تو رو بهتر بخورم و بعد هم دهانش رو باز کرد و همونطور که مادر بزرگ رو خورده بود شنل قرمزی رو هم بلعید. بعضی میگن که قصه شنل قرمزی و مادر بزرگ به همین ترتیب پایان یافت اما بعضی دیگه عقیده دارن و میگن گرگ وقتی مادر و شنل قرمزی رو خورد خوابش برد با دهانی باز خوابید و بلند بلند خور خور کرد طوری که صداش از پنجره و دودکش بیرون رفت شکنی که از اون نزدیکی عبور می کرد از شنیدن صدای خورخور بلندی که از خونه مادر بزرگ می اومد، تعجب کرد مادر بزرگ یه زن بود حتی اگه تلاش هم می کرد نمی تونه صدایی به این بلندی داشته باشه اول فکر کرد که به او مربوط نیست داشت از جلوی خونه رد می شد که دوباره صدای خورخور به گوشش رسید خورخور بلندی که شبیه به غرش بود طوری که مو بر تنش سیخ شد هیزمشکن می دونست که در جنگل گرگ زیاده ضرر نداره اگه سریع به مادر بزرگ پیر بزنه در زد رپ رپ رپ تق تق تق هیچکس جواب نداد اما هیزمشکن می دونست که کسی داخل خونه است با خودش گفت دارم صدای خورخور می شنوم، اگه مادر بزرگ نباشه میدونم چه کسیه دستگیره رو کشید و چفت در رو باز کرد و داخل شد ناگهان دید که گرگ با شکم بزرگی برامده روی تخت خوابیده. هیزم شکن فوری فهمید که چه اتفاقی افتاده با خودش گفت گرگ اومده و مادر بزرگ رو خورده بدون معطلی تبرش را بلند کرد و گرگ رو کشت بعد چاقوش رو برداشت و شکم گرگ رو پاره کرد. وقتی هیزمشکن شکم گرگ رو درید با تعجب دید که مادر بزرگ و شنل قرمزی از شکم گرگ بیرون اومدن. شنل قرمزی به مادر بزرگ نگاه کرد. پاک گیت شده بود. گفت چقدر تاریک بود؟ مادر بزرگ گفت بله همینطور طور بود. هیزمشکن گفت خوب شد که از اینجا رد می شدم و شما بیشتر اونجا نموندین حالا پیش از رفتن کاری مونده که باید انجام بدم بعد رفت و چاقوش رو آورد و پوست گرد رو کند و اونو با میخ به درخت وصل کرد تا هشداری باشه برای بقیه گردها ها که ممکن بود دوباره به فکر خوردن شنل قرمزی یا مادر بزرگ پیرش بیافتن حالا آیا قصه شنل قرمزی و مادربزرگش با گرگ تموم شد؟ یا حکایت گرگ با میخ کردن پوستش به درخت تموم شد؟ من نمیتونم تصمیم بگیرم کدومش پایانش درست تره. اونو برای شما میذارم تا خودتون تصمیم بگیرید